دو هفته ای به این ترتیب گذشت در این دو هفته آنچه ایوان ایلیچ به زنش آرزو داشتند صورت گرفت و پترش چف رسما از دخترشان خاستگاری کرد غروبی بود که این جوان از دخترشان تقاضای ازدواج کرد و صبح روز بعد پراسکووب یا فیدروفنا به اتاق شوهرش رفت در حالی که فکر کرد خبر پیشنهاد فیودور پتروویچ را چگونه به او بدهد اما آن شب حال ایوان ایلیش باز بدتر شده بود پراسکوفیا فیودورونا او را روی همان کاناپه خوابیده یافت اما وضع خوابیدنش عوض شده بود تاق باز خوابیده به نقطه چشم دخته ناله می کرد پراسکوفیا فیودرونا شروع کرد که درباره باره چیزی بگوید اما در نگاه ایوان ایلیش و چنان شدید خواست نسبت به خود دید که حرفش را تمام نکرد ایوان الیچ گفت تراخ به خدا بگذار راحت بمیرم زراش میخواست از اتاق بیرون روید که دخترش وارد شد و نزدیک او آمد برای سلام و احوال پرسی ایوان الیچ همان نگاهی را که به زنش کرده بود به او نیز انداخت و در جواب پرسش او که از حالش می پرسید به سردی جواب داد که به زودی همه را از بار وجود خود خلاص خواهد کرد. زن و دختر هر دو ساکت شدند و کمی نشستند و بعد رفتند. لیزا به مادرش گفت تقصیر ما چیست؟ انگار ما مریضش کردیم. من دلم برای پدرجان می سوزد. اما او چرا ما را اینجور عذیت می کند؟ دکتر سر ساعتی که قرار بود آمد میبانه و پرسش های او جز آری یا نه جوابی نمیداد. و نگاه غضبناک خود را از او بر نمی داشت آقابت به او گفت شما که خوب می که کاری از دستان سخت نیست؟ را راحتم نمیگذارید. دکتر گفت کاری که از دستمان ساخته است این است که رنج شما را کم کنیم ایوان گفت نه این کارم از دستتان ساخته نیست بز کنید دیگر دکتر او را گذاشت و به تالار پذیرایی رفت و به پراسکووی افیدرونا گفت که حال شوهرش بسیار وخیم است و تنها دوایی که ممکن است درد او را که باید تاب رو با باشد تسکین دهد تریاک است. پزشک می گفت که دردهای جسمانی او وحشتناک است و راست می گفت اما هوش روباتر از رنجهای جسمانی دردهای روحی او بود. چنانکه که ازا اصلیش همین دردهای روحی بود. رنج روحی او از این بود که شب پیش که به چهره خوابالود گراسیم که با آن گونه های برچستش همه نیک خواهی بود مینگریست. ناگهان به این فکر افتاد که حالا اگر زندگی من زندگی آگاهانم همه گمراهی بوده باشد چه؟ به ذهنش رسید که آنچه پیش از آن فرضی کاملا غیر ممکن به نظرش می رسید یعنی اینکه او در زندگی به راهی نادرست رفته باشد، ممکن بود، غیر ممکن نباشد. به ذهنش رسید که چه بسا کوشش ها و تمایلات به زحمت محسوسش به مبارزه علیه آنچه بلند، پایگان، نیک میشمردند، و او فوراً آنها را از دل خود بیرون میراند، شایسته و باقی همه نادرست بوده باشد. چه بسا که تلاشهایش در خدمت دولت و در راه سامان دادن به زندگی و خانواده خود، و علایقی که در محافل و در محیط خدمت برایش پدید آمده بود همه گمراهی بوده باشد میکوشید که از همه اینها پیش خود دفاع کند و ناگهان سستی بنیاد آن چرا میکوشید از آن دفاع کند احساس کرده بود چیزی نبود که قابل دفاع باشد با خود گفت اگر من با یقین به تبا کردن نهمت که به من داد شده بود از دنیا بروم و هیچ راهی برای اصلاح این حال نباشد اون وقت چه؟ بر پشت خوابید و شروع کرد زندگی خود را به چشم تازهی باز پیمودن وقتی صبح شد و پیش خدمت به بعد از او زنش و دخترش و بعد از آنها دکتر را دید. یک که حرکات و سخنان آنها را مصدق حقیقت او یافت که شب پیش بر او آشکار شده بود او در آنها خود را باز می‌یافت و آنچرا که به آن زنده بود به روشنی میدید که اینها همه پوچی است و تباهی است فریبی عظیم و سیاه است که زندگی و مرگ را بر او پوشیده داشته است این یقین رنج جسمانی او را بیشتر کرد ده چندان کرد پنال افتاد و تقلا میکرد و میخواست لباسش را پاره کند احساس میکرد که لباسش بر تنش تنگی میکند و میخواد خواهد کند و از آنها بیزار بود بر مقدار تریاکش افزودند و او به خواب رفت اما هنگام نهار این ماجرا دوباره آغاز شد همه را از خود می و خود را به این سو و آن سو می انداخت زنش به نزدش آمد و گفت جان خواهش میکنم به خاطر من قبول کن این کار هیچ ضرری برایت ندارد و اغلب فایده دارد اصلا هیچ زحمتی نخواهد داشت آدم های سالم هم اغلب این کار را ایوان نیدیج چشم دراند چه میخوایی؟ میخوایی که شیش بیاوری؟ برای چه؟ لازم گر چه؟ رسکو بیافید به گریه افتاد قبول میکنی عزیزم میفرستم دنبال کشیش خودمان او آدم خیلی مهربانیست دیوان الیچ گفت خوب باشد بسیار خوب وقتی کشیش آمد و اعتراف او به گناهکاری و اظهار پشیمانیش را شنید ایوان ایریچ نرم شد و دید که انگاری از سنگینی بار تردیدهایش کاسته شده و در نتیجه رنجهایش نیز کاهش یافته است و برق امیدی در درش پیدا شد دوباره به فکر روده یک کورش افتاد و به امکان بهبود امید بست هنگامی که عهد خود را با خدا تجدید می‌کرد، عشق در چشمانش آمده بود وقتی بعد از اعتراف و تجدید عهد او را باز خواباندند چند دقیقه احساس راحتی کرد و دوباره نور زندگی در دلش نمید و به فکر عملی که به او پیشنهاد می کردند افتاد با خود می گفت می خواهم. زنده باشم زنده زنش آمد و به او تبریک گفت همان کلمات عادی را بر زبان آورد و افزود حالت است، مگر نه ای ریچ بیان که به او نگاه کند گفت چرا؟ لباس زنش و ترکیب و حالت و صورتش و لحن صدایش همه معید یک چیز بود تمام آنچه برایش زندگی کرده ای و می دروغ است و فریبی که زندگی و مرگ را از دو پنهان می‌دارد. همین که این فکر از سرش گذشت بیزاری در دلش جوشید و با بیزاری رنج عذاب جسمانیش جسمانیش افزایش یافت و با این افزایش آگاهیش به تباهی و نزدیکی مرگ ناگزیر ذهنش را فرا گرفت حال تازهی در او پیدا شد مثل این بود که پیچی در اندرونش میچرخید و تیری از تنش گذشت. نفسش تنگی گرفت حالت صورتش هنگامی که به زنش جواب داد و وحشتناک بود وقتی این چرا را بر زبان آورد در چهره زنش نگاه کرد و به سرعتی با ضعف شدیدش ناسازگار واغلتید و دمر افتاد و فریاد زد مرمید لاحقا بگذارید